بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين والصحبه أجمعين أما بعد بستثبت من درسات درسية السوري يوسف عليه الصلاة والسلام قيب عن جهشت الله جل شأنه وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف برادران يوسف مدى النز يوسف بإمبراطورية مصر پادشاهی مصر این بعد از بر تخت ریاست نشستن یوسف بعد از اینکه زمام امور رو در مصر به دست گرفت یوسف زندان بود از زندان آزاد شد شد خزانه دار پادشاهی مصر وزیر مالیشون بلکه تمامی زمام امور را پادشاه مصر به دست یوسف تو امینی و علیمی میدونی و نزد ما این تمکین رو بهت میدیم که هر کاری دوست داشتی انجام بدی و اون چیزی که به صلاح میدونی انجام بدی. هفت سال نظارت میکنه یوسف بر امور اقتصادی، امور بازرگانی، امور کشاورزی، امور دامداری، بر همه اینها یوسف علیه السلام نظارت داره. امور کشاورزیه، باید کشت و بالا ببره، چنانچه خودش خوابو تعبیر کرده بود، هفتا تا گاو باید گا چاغ گاوم چاق نمیشه، جز با کشت بیشتر. خب باید تکنیک کشت را بالا ببره که بتونن بیشتر بکارن، بیشتر برداشت بکنن، انبارها رو بیشتر کنن، بیشتر بتونن ذخیره کنن، یک قسمت از کارش اینه، نظارت هم بر کل اون جریان کشاورزی، همه کارها رو خودش با از نزدیک انجام بده. یک قسمت دیگر بحث دامداریه، خب همون خود ثروتی هست که الله در اختیار ما قرار داده، دام های مختلف. انسان نمی‌تونه بدون گاوش، گوسفندش، مرغش احتیاج بدنه. احتیاج روزمرگی ما از شیرش از روغنش همه ها احتیاجات بشریه از یه طرف دیگر هم ما بقیه انسان انسان غیر از خوردن آشامیدن نیاز به لباس داره اگر اینجا کشت کشاورزی جای دیگر کالاهای دیگر دارن صنعتای دیگر دارن انواع فلزات مس آهن میوردن برای فروش معاوضه کردن اون چیزایی که میساختن با انواع حرفه هایی که داشتن از ایران از عراق از سوریه از ترکیه قافله ها میومدن همون که قافله اونجا اگر یوتن هست با جت سیاره قافله اومدی یوسف را چاه در ورد بعد گرفتن به عنوان برده و را فروختن در مصر قافله ها مسیرشون بود از مسیر فلسطین رد میشدن می اومدن به کنار تنگه‌ای که میان آسیا هست و اون دریا دریای سرخ از اونجا رد میشدن میرفتن به مصر دیگه از مصر آذوقه را برمیگردوندن یعنی اون پردنی ها از انواع گندم و عدس و نخود و دیگر چیزها خب هفت سال از کشاورزی گذشته الان دوران هفت سال جدید خوشالیه الان نوبتی این شده که مردم فرسین برای جماوری ازوخه برای اینکه زنده بمونن بیان به مصر تا ما یحتاج خوششویی 7 سال خوششالی بر روی زمین شده و محتاجن که بیان به مصر هیچ جای دیگر هم نیست تنها جایی که گفتیم الله یاد میکنه از مصر به عنوان خزینه های دنیا در اون زمان کشاورزی ها همه در مصر بود مادر دنیا بود مصر خب برادران یوسف در اون قحتی و خوش‌صالی میان نزد یوسف وجاء تو یوسف فدخلوا علیه این نشانه چیه وقتی که میان نزد یوسف برادران یعنی اینکه یوسف خودش مسئولیت توزیع و پخش را به عهده گرفته خودش مسئولیت را به عهده گرفته این نیست که به کسی دیگه به نظارت مستقیم داره این یک مسئول نمونه را بر ما مشخص میکنن، یک مسئول نمونه وکیلی نداره، خودش نظارت داره همونطور که قبلا نظارت داشت بر کشت و دام الانم بازرگانیه بازرگانان اومدن برای خدید و فروش و معامله یوسف هم اونجا در بازرگانی هم شرکت داره خزینه ها به دستشه باید این بازرگانان تأمیم بشن اونم سه دارن نه اینکه که هرقدی دلشون خواست و هر پولشون رسید نه اون کالایی که وردن قیمت بندی باید بشه، احتیاج خودش رو باید بهش نگاه بکنن، نه این که هر چیزی رو بردارن، نه، اون چیزی که احتیاج دارن، اون چیزی که واقعا ارزش داره و معادل اون ارزشه، از اون کالا عورتن حالا پول دارن در همه دیناره حالا طلا و نقره یا از شمشیر و چاقو و دیگر چیزایی که به عنوان کالا محسوب میشه که اینجا معاوضه بکنن، مقایره بکنن، عوض بدل بکنن. وقتی که وارد میشه نزد یوسف، الله چین یاد میگیره، میگه فعرفهم یوسف اونا رو شناخت این زیرکی و ذکابت و هوشیاری یوسف ویرست شده و هم له و منکرون ولی اونها رو نشناختن یک فراستی اینجا در یوسفه سرعت تشخیص این سرعت تشخیص این هوشیاری، یک استعداد الهیه این استعداده از نور ایمان نشأت میگیره بهش میگن فراست فراست یک نوع الهام الهیه یک نوع نور الهیه که در دل شخص میفته. خدادادی اکتسابی نیست. بله زحمت کشیدی، ایماناتو قوی کردی، این فراسته به دست میاد. قادر همین رسول الله صلی الله علیه و در شهر نمرام به خطاب چی میگه؟ لو کان فی امتی محدثون انهم ملهمون ده عمر. کسانی الهام بشن در امت من عمر رضی الله عنه. عمر الهام میشد. چنانچه بر سر منبر ساده بود و بر سر منبر صدا می زد الجبل. می جنگیدن ارتش عمر خطاب این صدای عمر رو انجا شنید کرامت، کرامته ایک نصرت الهیه نصرت این ولایت پاداشی هست در مقابل ایمانت الله و لیوالذین آمنو این ولایتش الله این انشنین نمایان میکنه برای اشخاص مؤمن فکر نکنی که ما نصرتت نمیدین از چشم ما غافلی انتن الله ی انسر الله رو نصرت دادید الله تو را نصرت میده چنانچه به موسی و هارون گفت این اسمعوا من با شما با نصرت و تعیل فکر نکنید که از شما غافل پس این فراست این هوشیاری سرچشمه نور ایمانه با این در معامله موفق میشه در معامله با همسرش تعامل با همسرش با فرزندش با خیشاوندانش در زندگی که چیکار بکنه چیکار نکنه الهام میشه اون جایی که نیاز داشته باشه این نصرت الهی نصرت الهی فقط این الهامات نیست برای مؤمن متقی دیندار بلکه جایی الله فرشتگانش هم برای تاییدش میفرسته برای نصرتشو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله اکبر در مقابل استقامت ایمانی الله میگه برای نصرت بندگانم فرشتگان را میفرستیم نه کم زیاد میفرستیم تتنزلوا علیهم یعنی بسیار فرشتگان برای نصرت اون بنده خواهند آمد فکر نکن تنهاست نه الله از اون با کن فیکونش که بیگیت بشه میشه با اوست و در کنارش هم سربازان الهی از فرشتگانش مسخرا برای مؤمن و همچنین مؤمنانی که بر روی زمین هستند پس یوسف علیه السلام اونها رو میشناسه و اونها او را نمیشناسند اینجا منکر اصل انکار وقتی انسان چیزو انکار میکنه که جاهل باشه نسبت به حقیقتش ماهیتش حکمش جای منکر معروف میشه جای انسان به خاطر این کسی بهش نگفته از جهلش خوب میپنداره مشروب فکر میکنه به نفشه فکر میکنه که غمش را کم میکنندک میکنه نمیبینه که رفتارش با دیگران تعاملش با دیگران چی شده وحشی شده نمیبینه که این اون رو داره کتک میزنه زن و همسرش نمیبینه که داره مالش رو به فنا میده نمیبینه که جسمش داره نابود میشه دل و روده‌ش رو نابود داره میکنه بدنش داره فرسوده میکنه و دیگری که الله در قرآن میگه که ضررش از نفسش بیشتره نمیبینه کور چون نه از حکمش میدونه نه از به بخاطر همین این منکر میشه معروف وقتی که انسان حقیقت یه چیز رو ندونه انکارش میکنه پس جهل خیلی بده خطرناکه دیروز هم اشاره کردم اعراب الله در شأنشون میگاله اعراب اشد و ونفاقا اشد كفرا کفرش خیلی شدیده نفاقش خیلی شدید الا جهل نمیرفتن نمیمدن در بداوت خودشون باقی مونده بودن نمیمدن برای تعلیم برای یادگیری سانی که یاد نگیره دنبال یادگیری نباشه در جهل باقی میمونه نمیدونید که این حرام انجام میده بس اینجا دو تا قضیه هست. یکی بحث ایمان بحثی یوسف که ایمان چطور مسیر را برای انسان روشن میکنه. یکی بحث علم چگوی به انسان بسیرت میده. این دوتا با همن علم لازمش چیه به وجود آمدن ایمان یعنی شما آن علمی یاد گرفتی درسای سای از سوره یوسف این علم لازمش چیه که ایمان شما بالا بره ازداد دلینامن و ایمانه الله با این قرآن شما ش ساهش خیلی در سا گرفتید ایمانتون یقینتون نسبت به حکمت‌های الهی بیشتر شد نشد بیشتر شد ایمان تو بیشتر میشه و طولیت علیه آیاته زادتون ایمان و حکمتها چقدر حکمت تو این درس یوسف انسانه خیلی چیزها رو نمیدونه باید یاد میگیره. علم که از اون کفر و نفاق نجاتش میده از اون یت نجاتش میده و جا اخه یوسف یوسوف و دخل عليهیه ف و مکرون قال تووری به اخل من ابيكم. بلا ما جهز هم بی جهازی هم جهازشون جهاز هم, هم چی بود آزوقه شو؟ گندم، خردنی آماده کرد براشون جهاز، تجهیز یعنی آماده سازی تجهیز کرد اون چیزی که نیاز بهش داشتن به جهازی هم قالعتونی به اخیل لکوم وقتی که جهیزشون آماده شد اون شون آماده شد خردنی ها آماده شد قالعتونی به اخیل لکوم سوال اینجا همیشه یوسف از کجا دونست که این باید برادایی داشته باشه اینجا که خودشتو داره رو میکنه که کیه کی نیست نه نه الله داره خلاصه و چکیده بهمون میگه ماجره هفت سال رو نگفت ماجره الان چندومین سال قحتی به ما نگفت بعد هم گفتم یوسف سرشمالی میکرد بر اساس تعداد خانواده و خانوار سهمیه بندی میکرد این طوری نبود که هر قد پول داری ما به تو نه معامله نبود کمک بود. این آزوخ کمک بود یک از مسئولیت های دولت ها اینه که از مردمشون حمایت بکنن هیئتی داشته باشن برای کمک و یاری نه برای چپاول و بغال منو دست و جیب مردم کردن و مالیات گرفتن مالیات در شهر ما حرام از مسلمان گرفتن نه نبی صلی الله علیه و سلم عن المکس مکس مکس گرفتن مالیات حالا به عنوان گمرک به عنوان کالایی که وارد کشور شده اینها از مؤمن گرفته نمیشه مالیات از کی گرفته میشه از اهل کتاب شرع اسلام دین اسلام من کاری ندارم بالا کسی دیگه حالا این پس نظام چگونه خودش رو بچرخونه چه کار بکنه الله راه کارها گذاشه چه در سوره کف در سوره یوسف از خود مردم کمک بگیره مردم خودشون بیا همکاری بکنن با دل راز بس ایجاد رضایته نه که مردم ناراضی باشن هی برای هر چیزی ازش مالیات میگیرن اون مالیات زور پول زور که که سبب بشه هی نارضایتی ها بیشتر بشه طرف میدونه ماشینش 100 میلیونه ولی خب میدونه 200 میلیون داره میده مالیات چرا میگه من اینقد مالیات بدم چرا اون کالایی که من میخوام استفاده بکنم اینقد مالیات مسئولیت دولت کمک و یاریه نه خالی کردن جیبا نه پول زور از مردم گرفته این یه قانون الهیه و جا اخواتو یوسف فدخلو علیه فعرفهم وهم هم لهم منكرون ولما لما جهازهم بجهازیم قال اتوني باخن لكم من ابیکم اومدن شناخته اونها رو بعد از حال احوالشون پرسیده سرشماری کرده خب بات وجبه با توجه به اون سرشماری برادرتون بیارید بس برای بار دوم که میاید برای اینکه ما بفهمیم واقعا شما راست میگید اون یکی که شمردی از برادران باید بیا چرا نیست شما گفتید یازده تا برادری 10 الان باید اون برادرت باشه چون اون برادر زن داره بچه داره تنها خودش نیست هر کدوم از شما هم مسئول خانواده خودتونید مثل یه بنده خدایی اومده بود سرش کلاه بذارن دو نفر اومده بودن پول پیشش قرض میذارن نه که قرض میگیرن دو نفر پول پیشش امانت گذاشته میگن فقط یه چیزی یک وسیخه اینجا مینویسید اینکه اگر ما دو نفر اومدیم مثلا چکای دو امضا یا اگر ما اومدیم دو نفری با هم این پول ما بگردونی نقشه رخته بودن برنامه دراز مدتی این بنده خدا این نق میکنه از این قضیه ماجرا خب بعد از مدتی میگذره یک سال دو سال میگذره یکی از اونها میاد میگه خبر داری مرده نه خبر ندارم نه اون مرد و الان من اومدم به خاطر اون که اون امارات رو بگیره گفتم شما که امضا کردید که در صورتی که شما دو نفر باشید من بهتون بدم اصرار میکنه اصرار میکنه اصرار میکنه آخر بهش میخوام خب دیگه. مادامی که مرد چهکار کنم این پول مال من هم نیست این هم پول بفرما برو. مدتی میگذره یه اون که ادعا کرده بود که مرد زنده هست میاد پیشش میگه که من حق ما میخوام گفت که حق میخوای، میخواد ب میخوام که شما خ. خب قبل امضا کردی که دونفری با هم بیایید الان خود تنهایی اومدید بعد اون دوست اومد پولی را گرفت رفت گفت که تو مردی که من که زنده چرا بهش دادی اصلا؟ میره پیش یه قاضی یکی قضیه اینطوری شده منم الان این بعد از مدتی اومده ادعا میکنه که من زنده ام اون یکی اومده بود ادعا کرده بود که این مرده منم پول ما اون یکی دادم حالا چه کار کنم گفت که یه چی مگه ننوشتم پیشت که دو نفری با هم اگر اومدن بهشون بدی خب مو اون دوز را بواد بگیری دیگه اون کسی که پولارو با را بارا کشیده با توجه به امضاشون هر دو تاشونو بخواه هر دوتا رو بیار پیش خودت گفتم باش. رفوی یکی شما امضا کردید که اگر دو نفری اومدید من به هر دو تاتون بدم چون اونا به خودشون بسته بند کرده بودن با هم دیگه راضی نمیشه که اون رفیقش دیگه بره بیاره چون هر دوتا با هم هم دست بودن برای دست اندازی این بنده خدا اینجا هست که انسان باید زیرک باشه در معاملش در کار و تجارتش بعدم یک مسئله ای که اینجا الله اشاره میکنه با توجه اون چیزی که در بنی اسرائیل اومده ما گفتیم دو اشاره کردیم یا بیشتر از دو بار سه شد. اینکه یوسف و بنیامین حالا اسم بنیامین که در تورات اومده این دوتا برادر ناتنی اون ده برادر بودن مادرشون غیر بود پدرشون یکی ولی مادرشون اینها بچه زن دومن دو اونا بچه زن اولن اونا بزرگتر بودن ریش سفید بودن با خاطر همین اینجا یوسف علیه السلام چی میگه تونی به اخل لكم من ابيكم اون برادر پدری ناتنی که شقیقتون نیست پدر مادرتون یکی نیست اون یکی برادرتون هم بیارید پس اینجا مشخصه تایید این قضیه یعنی این مورد تاییده که از یک مادر و پدر نبودن بلکه پدرشون یکی مادرشون متفاوت خیر الله درسی اینجا بهمون میده یوسف بهنا میگه گوشزد میکنه یاداوری میکنه یوسف از فضل خودش میگه جای انسان مشکلی نیست از فضل خودش بگه اونجایی که خصوصا در مقابل فرزندانش نه اینکه مننت بذاره بعدی که انکار میشه که پدر تو چیکار کردی هیچ کاری نکردی اون پدر میگه میگه من هزینه تحصیلت رو ندادم من زحمت نکشیدم این بیان فضل الا ترون اني او في الكيل این مکیال و این ظرفا و این پیمانه ها رو پیمانه داشتن وزن نبود گندم و جو و نمیدونم ادس خود و اینا با میکیال همون تو که در صرفه دارید کیل مدینه حالا کیل مدینه با مش بود بعد دیگه تبدیل کردن اندازه این مش دست اهل مدینه را تبدیل کردن به پیمونه ها ظرفایی ساختن که دیگه راحت تر باشه چون دست ساده کوچیک بزرگ داره خب یوسف میو علیه السلام بهشون میگه, میگه نمیبینید من پیمونه ها را دقیق دارم میدم بر اساس هر خانوار سرشماری کرده هر کسی مال خودش رو تحویل میگیره مال خانواده خودش خب این یه قسمت من انسانی عادلم در توزیع خیانت نمیکنم، کنم، امانت دارم، یک، دو، من مهمان نوازم، من خیر المون کسی که نزول پیدا میکنه نزد من، کسی که میاد به مهمانی پیش من، این بزرگواری یوسفه، این اکرام مهمونشه. اگه نیبینید من دارم اکرامتون می کنم، شما هم که اومدید، با آغوش باز شما را تحویل گرفتم، ظلم نیکر به اوناش، شما غریبه شما از فلسطین اومدید، ما کاری به شما نداریم، نه. با چشم تبعیض نگاه نمی کنه فرقی نمی کنه تو مصری باشی فلسطینی باشی محتاجی اومدی وظیفه خودش میدونه که اونها رو یاری بکنه کمک بکنه نمی بینید که شما رو داریم اکرام میکنیم بحث مهمانداریه یک از وظایف شرعی که رسول الله هم صلی الله علیه و سلم به بهش توصیه میکنه که حق مهمان سه روزه وظیفته اکرامش بکنید یوسف کریم بود همونطور که رسول الله صلی میگه کریم فرزند کریم فرزند کریم فرزند خلیل الله کریمه کرم داشت حالا از کرمش میبینیم دوباره آیات بعدی هم باز هم اشاره به کرمشه مهمان نواز بود پس این مساله خیلی مهمه که ما آویز گوشمون باشه مهمان نوازی در اون گوسفندی نیست که سر میزنی براش مهمان نوازی در اون کرمت در صحبتت در رفتارت بفرما خوشحال شدیم اومدی بزرگواری کردید اومدید این خیلی مهمه هی. که ما خورسند باشیم کسی پیش ما هستیم که اکرام شدیم با اومدن اون مهمون نه اینکه ما هستیم که مهمون رو اکرام میکنیم اون مهمان اومده در روزی برات باز کرده تو اون مهمان بر تو منت داره اینو همیشه بدونیم ما محتاج فقیریم مسکینین ما محتاج مهمانین خلاف میگنن اون فقیر محتاج ماست نه والله ما محتاج فقیرین مایی که داریم محتاج فقیرین روز قیامت محتاج هم و یک درهم و دو درهم هم میشیم ما محتاج اون کمک ها و اون صدقات میشیم الله مزاافه میکنه الله چند برابر میکنه براش. ما مباد دنبال اجر و پاداش باشیم مهمان اومده اجر برامون بده مهمان اومده پاداش الهی برامون ذخیره بشه نه که فقط به آخرت اخر در همین دنیا یک درهم دادی الله جایگزینش و ما انفقت من شيء ان فهو يخلفه الله جایگزینش برات میده پس تو محتاج مهمانی تو نیازمندشی چه مهمانش چه فخیره چه اون کسی که نیازمنده مصیبتی برش وارد شده تو محتاج اون کسی که بهش یاری برسونی تو میتونی تو از جهنم بیرون بکشی تو محتاجشی اینو قاعده برات در روزی روزه بکنه اون مننت بر سرتو داره نه اینکه تو فکر بکنی تو مننت داری برا سرش که راهش دادی تو خونه نمیدونم هزینه کردی براش نه این طرز فکر باید تصحیح بشه این میگردم به باورمون نسبت به وحی به مجده الهی باورمون به مجده الهی سبب میشه دست دهنده باشیم نه دست گیرنده ما بدیم انفاق بکنیم خیر باشیم نه اینکه ما خیر را بگیریم این زشته دست گیرندگی زشته دست بندگی اهل دنیا زشته رسول الله صلی الله علیه و به مزمت یاد میکنیم که تاسه سشت باشه اون کسی که برده دنیاست بنده دنیاست تاس در الدرهم و دینا. کسی که مده دنیاست زش بشه زشتیه که انسان دست گرنده داشته باشه رسول صص الله عليهلی ووسلا میفرمایید کسی که گدا باشه گایی بکنه از کسی دیگر بگیره یخ شرای آممال قییم سفی وجهی مضغت و لحم زشت روز قیامد گشت تو صورتش نیست از شرمندگی زشت اومده در روز قیامد خاطر همین نظارم گل ف خیر مستماند مجبور بشه که دست گایی دراز بکنه به طرف ما قبل از اون به خاطریکدی کمکشش بکنیم روز قیامت حداخ روزفید باشه قبل از اینکه خودش سوال بکنه ما بهش بودیم نظرارم مردم در این ضرورت میفتن که دستشون بكسي درازوش فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تخربون فإن لم تأتوني خب قف برادرتونو بياريد من مهمون نوازيتم میکنم كتوهينم میکنم در حقتون ولكن إذا لم من حاكمم فإن لم تأتوني به اوز بمن بديت فلا كيل لكم دیگه اون پیمانه ها نمیتونم بهتون بدم موازو خیر نمیتونم بهتون بدم فلا کیلی لکم عندی ولا تقربو نزیکم نیتخواهش منو شرمنده نکنیم نمیتونم من، تعارف با کسی در حق نداشته باشه تعارف با کسی در حق نداشته باش. خیری میخوای خیر بکنی ولا تبسط کل البست الله بپی من، میگه علیه صلات و السلام. میخوای خیر کنیم ولی که کل مال تو بدی. ولت تب کل الباست همه رو باز بکن یا بری قرض بکنی به خاطر این و اون. نه به اندازه توانت، به اندازه توانت. انسان در حد وسعش یاری میکنه. ده. در امر دین هم اینطور، تعارف نداشته باش. من یادمه برای ازدواج چندین نفر اومدن. مام ازدواج تو بده با ما از خانواده. سخیش گفتم حرامه. گفت خب تو برای خودت حرامه. ما استفاده میکنیم. گفتم الله جل شنو در قرآن میگه و لا تعاونو على الاثم والعدوان در گناه و معصیت با هم دیگه یاری نکنید کمک از هم دیگر نخواهید هم دیگر و یاری نکنید درش گناه من اگر بدم یعنی من یاریش کردم من اگر برم شاهدش بشم من هیچ وقت بر معامله حرامی نشاهد باشید نگواه باشید و لا علی الاثم والعدوان جایی تو نمیگیری کسی دیگه داره میگیری ولی تو چی؟ که واحد میشه شراکت در جنایت در ام معصیت و گناه. و بعضی از اونها فتوا دادن جایز ولی خب من خودم بر حرمتشم اجتهاد کردم جای اجتهاد کردن گفتن کارمزد و فلانه. کارمزدی در این مسئله سخت الان برای من خودم حث شده نیست. کارمزدی معنا نداره. کارمزد یه چیز مشخصیه. کرموز اون کار من درصدش مشخصه یا اون مقدار هزینه یه کارش مشخصه بالاخره اوراق میاد میره مثلا گفته میشه آقا این بنسبت معاملاتی که نزدش میاد حقوقی که میگیره آقا 1 میلیون تومن بنسبت مثلا هزار تا معامله سهم تو میفته یعنی 4 درصد نه یوردی بیشتر بشه و حرام تو حرام میاد یعنی اگر این 4 درصد نداری، هی انباشته ام میشه امسال 4 درصد سال دیگه هم 4 درصد رو اون. بازم اضافه میشه آخر میبینی به جای که 104 میلیون بر بگردونی 140 میلیون برگردوندی این تو رو بپیچونن و دورت بدن خودم هم ندونی چه دورت دادن کرد دیرکردها و اینا همه حرام روی حرام اومده و میاد بهتره که انسان از شوفه خودشو دور بکنه چطوره که یک کسی یک میلیارد قرض میگیره 4 درصد و یکی که مثلا 100 میلیون قرض میکنه اونم بازم 4 درصد 4 درصد 100 میلیون میشه 4 میلیون 4 درصد یک میلیارد میشه 40 میلیون چرا اگر کارمزیت بود همه یکسان باشه این با 4 میلیون بده اینم با میلیون بده چرا این 40 میلیون بده این 4 میلیون خب هزینه اوراق همونه کارمزده کار اون کارمند یکیه پس یه چیزی دیگری هست توی این قضیه یک سودی هست توی این قضیه حالا این که نمیدونم ارزش پول داره پایین میاد و نمیدونم تورم هست و الله اگر،, اگر بحث این تورماد نبود نمیگفت یقرد الله قرض حسن قرض حسن رو بهش نمیگفت حسن اینه که تو نیکی بکنی اون موقع که احتیاج داره به دادش برسی نه که اون فقیر تو ازش مطالبه بکنی که بیشتر از اون پولی که بهش دادی بهت بر بگردونه پول فقیر و حقوقم امرا رو معناش که بر اساس درهم و دینار که نیست بر اساس تورم کنی تورم داره میره بالا خوب این بدبخت تر که داره میشه تو از اون کسی که بدبخت تره به جای که یارش باشی بیشتر ازش میگیری ارزش پول اومده پایین به جای که بگه آ 100 میلیون بهت دریم فقط 50 میلیون بده نه اینکه دیگه بیشتر از اون 100 میلیون ازش بخوای این قرض حسن نیست این قرض بد سیئه زشته خودت دست تو جیب فقیر محتاج کرد. از اون محتاج گرفتن این محتاجه محتاج را باید یاریش کرد بهش داد این فرهنگ دینیه این فرهنگ شریعت سوره یوسف بخونید ببینید الله چه درس هایی به امیده چه عبرت هایی به امیده سبحانه سبحان الله سبحانه بحمده صلی الله علی محمد و علیه محمد